اللهم فرمان جمعی و رحم نا که بحثی که به وجود بود که معروف بود که این باشه. حجت نمی این به که من توجهش را می‌شناسم و و حقیقت این بحث من شد تا اینجا که مرادشون از مطالب عقلی اجمالاً کل لحاظ اصوله این اجمال بسه یه مقداری هم متعرض تفسییات شدیم یه جمعنگی نهایی هم اینشالله توی آخر بحث اینشالله تعالی از صد مقوم ملاب محمد علیمی استرابادی در فصل شیفونی که نرشه بود اینا. فصل شیفون و شیفون یه تفصیلن از عباب اصول که جیعیت و قابل اعتماد نیست نام برده بود به ترتیب از براقت و استصحاب اینا که به حسب شمارشی که ما انجام دادیم از کردیم دوازدخت تا بود ارز کردن در اون دوازدخت تا، اون مقداری که خیلی بسا در خلاف بینن اخبار ها و اصوری ها و خیلی زمینه بحث بوده این, یکی زواهر یکی یکی یکی این چند تاکسی که وجود زواده کتاب یکی اجه یکی براهارت یک کم رس ها این چندپه اساسی این نیاز. برای حالا لخره اختلاف مای بین خود اقال ودی هست و اما مردهش ایناس. در آزده ها و دوازدهم در یازده ها از آدهها تبیر صنده ی اشتوار نش در عدد، ایشون استحسان رو نام بردن که این جزء جزوه است که به اصطلاح در اصول هست و پیش ما حجت نیست که عنوان استحسان دوازده مساله محسله البته احتمالاً مرادیشون از استحسان و مساله محسله در کتب اصول باشه به الا در کلمات اصحاب ما چه قبل ایشان چه بعد از ایشان این دو تا مطلب اینطور ساق ساق با امان استحصان و مسالح محصره نایمازه و بعضیها هم که الان در زبان ماست که اصولا مطرح نیست استحصان و مسالح نیست مفرق نیست الان برحال چون ایشون مطرح کرده و ممکن است یک ای بشه برای مسائل عقل که الان علمای ما مفرق نیست مثل آرکوی مثل مسئله عقل رو گفتن این که مثلا یک کمول عبد با حسنیهی و بحبهی. ممکن است کسی این یک کمول عبد با حسنیهی و غبیری رو که ایشون در مدلول عقل گرفتن معنی عقل گرفتن این با استحسان یا مسالح مرسله اشتباه بشه بهتر این که این دو تا, تا مطلبین استحسان و مسالح مرسله و در اون جبر فرهی شدنیه های تاریخی روشن بشه اما این دو دلیل, حتی دل دلیل, دلیل این هم که بین اده از عامه با عنوان دلیل ذهب شده اینم واضح بشه تا بعد برگردیم به خلاصی از کلام اصولی اخباری و نتیجه گیری نهایی تا اینجا تا بعد دو سو مسئله مستقل و جلازانه رو مستقل بکنیم این مسئله ملازمه کلیه قاضی ملازمه که اصولا با این جنبه ها و حکم عقل چی میشه مثلا رای که به استحصان در کلمات خود اصولی اهل سنت در تفسیرش اخلاف هست عباراتشون واضح نیست. اخلاف هم قدیمیه یعنی اخلاف جدید نیست. از زمان خلقا اینه که اینجا نرکه کردن مرزن از ما از زمان فوقها از من اصطلاح زمان فوقها این یعنی صحابه و طابعین فوقها بعد رو و از فقر زمان صحابه شوشو مراد من از فوقها این مرحله سوم یعنی بعد از تابعین از کسانی که نقل شده در این اقوالی در استصحاب استصحاب نعم کرده بر میگرده یی بعده می بعد از تابعین از و هر حال در کتب اصول اهل سنت تفسیری در و مصالح مرسله به لحاظ به اصطلاح مشایخ تاریخیش یعنی مشایخ اشتهارش است ف و در اصول هم طبیعتا به خود قرآن برمیگده و بشه اگاد لده یتبعون القب و یتبعون القب و یتبعون احسنه این طبعون احسنه این زیبان خیلی برها در اصول برای استحسان و به نغاز حدیثی هم حدیثی که علمای خطب ترازه اقل در تر اهل سنت مثل احمد بن حنبل نارا کردن ماراغون فماراغون مسلمون فهوه حسرون اندالله اینا نقد میشه ما را اهل مسلمون حسنا فهو عند الله حسنا در مسند احمد اینطور. سماره مسلمون حسنا فهو عند الله حسنا اینا روشهای قرآنی و سنتیه اما با عنوان استحسان و در اصول و در فقه وارد کردن تا که من اخواب دیدم استفسار نکردم احوال از زمان ابو شروع شده الان توی این اقوالی که کردم از زمان به اصطلاح قبل از او اسمی من نگیدم از تابعین یا مثلا مسئله صحابه حالا من از این کتاب احکام آمدی جلد چهار صفحه 300 سد و نرد کتاب مختلفی این شاپی که من دارم سه بچاره شما رو بذارهش مسرفته یعنی این تیساده از کل سه نه نه حضورتشان جلده مختلف این بعد از قیاس چون قیاس محصل بحث کرده بعدم قول صحابی ایشون بعد از اینکه که قیاس رو مطرح کرده و وارد بحث یعنی قیاس رو کامل کرده چند سال مطلب رو چند نوع رو و عنوان که محل کلام در بحث به حسب ترتیب و حسودیش به بعد تو قیاس که خیلی مفصل بحث کرده خیلی طولانی بحث کرده که آزشم هست یه مقدار شما شاید بخونم بعد در اونجا چهار رو در قسم ثانی به حسب این چاپی که منذر شد ردیف برد و تسلسل برد هم به نظر ما خیلی لطیفه و خیلی موثر. ایشون در اینجا از صفحه 306 66 منظر میخوام بعد میگه چیز و من انواع بعد است، استدلال بعد به استدلال استدلال هایی رو میاره که اختلافی شده دنبال به استدلال انواع، استدلال هایی که بعد از قیاس استدلاله استدلال شخصیه و در انواع قیاس هایی که انواع استدلال هایی که محل کلامه که شیش را به استدلال شیش نقه را آورده یکی شرع من قبلنا یکی هم مذهب صحابی سوم وم استحسان چهارم هم مساله محسنه امکان ترتیب طبیهش این رو جذبه استدلال هایی که محل کلامه که اختلافی و برزه قبول دارن برزه ندارن برای که اولا مقدر روشن بشه چند نمونه مثال داده بشه بر معروض بشه استه... استهتان اولا چیه چیه هست که ما ببینیم آیا میتونیم با هم که مرمون مولا محمد این اینجا اینجا روزه افخاص اصول اوورده که گفته پیش ما حجت نیست که آیا ببینیم اصولی مثلا پیش ما حجت ایشون در این صفحه سی سنوند میگه بقدر در استحسان فقال بگی از خواب عبی حنیفه و احمد و هنکرق البابون بقیه گفتن نه حتی نقل از شافی از و آ من استحسنه فقرد شرع حالا ایشون شرع چاک کرده یه بحثی دارم خود اصولی ها که این رو شرع بکنیم یا شرح بکنیم یعنی شرع درست افضل شرع چه با لکن نبی موستا ولابد قبل نظر تلخیص محل نظام اون وقت خودیشون اول سعی کرده که این رو بگه اصلا چی هست بعد ایشون میگه یه میخوام بخونم کلیشون خلاف در بکان روز این لفظیشون در قرآن آنه در حدیث آمده و وقت وعمل اطلاق بعد این که در کلمان سیرکوها و اهل روعت و اهل قرآن استعمال شده مورد از اطلاق اینجاست فهمان نوغل های من مثال های شودم که اینو معلوم بشه سر چی اقتلاف داشت فهمان نوغل من ان العلمه من استحسان دخول الحمام من غیر تقدیر عوضن لما المستعمل ولا تقدیر مدت سکون فیهام و تقدیر عجرته ایکی از مثال های استحسان این در دیگه درست کتابش رو بشنم مثال استحسان حالا این شرحش چیه؟ شرحش اینه که یکی از موارد استثنا اینه که انسان میتونه بره حمام و اصلا که این حمامم هم اون زیاد بود اصلا نیتاثیر رو 20 درجه حمام 20 درجه شه تا پنج تا نمیاد بیرون خب میاد این مشکل دیگه یک اجاره است یعنی مثلا میشه یه ساعت اجاره کرده باز هرزه مدت بشه با هرزه زمان بشه باز هرزه مقدار آب بشه با دلیل اگه اجاره است پس این چیه این آمدن گفتن این رو ما قبول میکنیم این بخاصه این که در نظر اقاف این مشکل نداره این اسمش دوشن استحسان مثال هایی هم بله استحسان دخول الحمان من غیر تقدیر عباد لما مستعمل چه مقدار به ادار آب چه مقدار بلا تقدیر مدت سکون سکون در اینجاره بودن کن برای سکون اشتباه باشه کن باشه سکون ما سکون ما این سکون نداره و تقدیر اجرته این یک مثال مثال دوم و استحسان شعر به من عید سقایین من غیر تقدیر فلما و عوضه مثلا آب اون از آب میگرم یکی به یک یکی بهش یکی بهش هنگی شوار میده بهش دهتان میده خب امید این باطله چون که اگر باشه یا بهی باشه به یه آب باشه و از ما حیب باشه و این باطله و ارت ارت این یعنی بگن ارف این ط پس ما حسن بودیم. ما را آقا المسلمون حسن ما بعد از شافعی نقل کرده از تحسن ان انتکون تلاتین در در المطعه حد مثلا سی در هم باشه. این مراد از المطعه داره. در این نیست با میخواهد یعنی ما اراده بکنیم. مراد این از همینطور که به المطلقان به المعروفون های قرآن این انسان محیزند و طلاقم دقیق از من یه مطاعی هم بشه یه چیزی هم بشه یه کالایی مطاعی نو بشه در ورحان مطاع آمده فوقها در چه ما هست و شیاب داره تعبیر به موتعه می کنه چون جاییی هم داره فمتعوهنه چی؟ حلقه داره چی؟ مرد موسیقی قراره فمتعوهنه چون تأبیر متعوهنه آمده ازش کلمه این موته در بوده. پس برای از روشن شد خب این مقدار که نداره شافیه گفت حد حداقل اقل در هم کمتر نشد از سخته اینه سخته اصلا دیگه چی داره ما به اصلا یه چیزی باشی مردمتان رو یک درهم بگی یک درهم خیلی زشده مثلا حداقل روشن شد در چیز روشن شد استحسان رو یک جوری گرسته در اقل و از سه سنو ثبوت از شخ عقل الشفی الى سواست عیق تو شخ ثابته که صافته مدت نظره میشه میگه من زوغم این طور بینم لاعقل سه روز که فرس یک بردار میتونه برداریم و از سه سنو ترکشه اینجای مکاتب مکاتب به نجوم کتابه نجوم داری در جمعه نجد به معنای چی میگه؟ تیکه پارهایه کردن به اصلاه به صورت چون مثلا یه اب می من میم خودن رو آزاد میکنم کار میکنم مثلا هفتهی مثلا بهقول انروزی مثلا هفتهی احدا ها میارن تا آزاد بشن. مثلا هفتهی حرفه ازان. این هفته ای در احداان موجوب میگن موردت موج تف بندی اینه بندی و اینشون می گفت خیلی خوب مثلا سگ فیشون رفت کار کرد دو سال کار کرد یه دو سه هفته مونده که دراززار رو تمام بشه اونها رو از سه. از 10 سر کشه اندل مکاتب به نجوم مکاتب یا عبد المکاتب عبد قرار داریمون قرار با یه مقدار از اون حصه ها به بخش مثلا هفته مونده چار مونده اون 4 هفته که باید چه داردش نگیر اینه مثل روشن مثال استحصال چی بود استحصال چون یه مقوم نمازن این استحصال استحصال ما هم احتمال میدیم که مثلا در این حکمه هر که آلکوینگر یا علمان مورد همین استیفانه اول منوش استیفانه چی هست اونی که در اصول به این احل سنت آمده و قال از مثال دیگه چون دسته راست ساره رو باز بریم حالا اگر دسته را بره دسته رو بریم اشون دسته شمی شده بریم بریم بسی زرفه حالا دسته راستش باز بریم چونه شما با باید تکلیف بوده تکلیف در ایشون میگه و قالت ساله بدل یومنا و میگه از قیاس قاعده اختیزار بکنه چون روی بوده دستراز بوده باید دستراز شده لیکن از ان لا این فروره این و قیاس استحسان ان لا ها. های باشن مثال بعد ایشون میگه خود آنشدی میگه پلن یبقل خلاف الا فی محن الاستحسان و حقیقتی که حقیقت استحسان چی آخر چی شد ولا لا شک میشه فی لا شک انا الاستحسان قدیت لف علا ما یمیل و علیه الانسان و یحوان استحسان ما که الان در اصطلاح یک سبیل زود رو من اقتضاق بکنه مثلا اقل لغایت مثلا باشه این زوگیات میکی بلا شکه اندال اختصان از یسلب علا رو علیه الانسان و یحوا همین زوگیات من از و المعانی و امکان مستقبه اندقیره را هوه فلوقه استفعال من الخوص بعد ایشون دیگه ولیسه ذالکه هو محل نظر خلاف میشه، چنین محل حد در لغات عربی ذهب بریده از ذره، او سر که بری. این جایی است که دستور در دنگاه و شغل فارسی ما جایی بریده خلا به به ازرا محل کار باشه. ولیزه لیزه که هو محل نظر خلاف، اتفاق الامه قبل ظهور المخالفین الا چون ام مرتضیه که احکامونو با ذوق و, و شهوات که نمیشه قبل ظهور مخالفین الا منا حکم مشهدی شرع الله تعالی به شهواتی و هوا من غیر دین شرعی و این تباهی است که میشه با ذوق یا درسه و نه هولا در بیزاله دین ذوقیات بین المشهد و الامین این اشاره به این نکته است که مشهد اگر راست ادعا دارد اگر قبول را قبول آمی رفت دردن از دیگره خواه قبول نیست آمی رفت دردن از دیگره این تنبیه مشکل مشهر و آمی اما اگر هر دو اصلا رو زوقیات هر دو قبول نیست نه آمی قبوله در مشهره رو عذله مشهر قبوله آمی قبول نیست چون آمی صدره نیمازدره اما بدون دریب و دون زوقیات نه آمی قبوله نه مشهر ولذا ایشون میگه نواد این محل کلامه باشه و مقدر خلاص اصحاب عوی حنیفه فیل تعریفی به حده و حد در اون ارتباطی قابل ربونیست فمن هم من قال انه او عبارتون اندلیل اینجایی گفتن میان گایی او باید مشهد به یک دلیلی میرسه میفهم مطلب رو. اما نمیتونه بیان بکنه نمیتونه از عدله استظهارش میکنه حس میکنه در اون وجدان خودش این مخاطر پردار مشهد را آمیده داره در اون زب درون آن حالت افتفاحتش حس میکنه این مطلب هست اون دقیق بکنی اما بخواد چاکر دریگ بیاره استخاب بیاره روایت بیاره که چتا... نمیتونه خیلی رویف بکنه یه قده ها فی نفس المشته دلیل یه قده ها فی نفس المشته لا یقدر علا اظهاری بیان نمیشه مثل یه در مقصد عربی یوسف یودرک ولا یوسف عدم مساعدت لعبارت آن یعنی حس میکنی این مطلب همینطوره میفهمی این در شاره اما بخواد اردک درید معیین ایک چیز معیین در سکت داره میشه که درست اون مطلب رو برسونه بعد ایشون میفهم از خود آمدی و الوجه کلام علی کلام علیه انهو انترد بین ان یکونه دلیل محققنن و بهمن ف یا, یا انت اگر بله یا انت تنبا باشی ان شا کده و رحمن فاصله فلا خلاف فی امتناع تمسک به خب میگم من نیفهمم می اما دلیل یوسه حقیقتاً این دلیل باشه اونگه واردش وارده فاصله فلا خلاف فی امتناع تمسک به و انتحقاً نه او دلیل من الادله شرعیه فلا نزاع فی جواز تمسک به و امکان ذالکه فی غایت و امم از نظافی تخصیصی بسم استحسان این در عجز ان ان تبیر ان دون حالت امکان تبیر ان یعنی شما معلوم میشه فیگه من یک احساسی میکنم یه احساس روشم بیان بکنم خب ولکه اون احساسی که براتون داشته از دلیل خود دلیل نیستم واسه قدرت بر بیان ولا حاصل نظاه لرزی بحثیه ایسی من میام استحسان استحسان شده میکنم اما دلیل من خودم می خیلی خوب بحثی دیگری نیست و من هم من قال از خواب عبی همیفه قیار عبارتون هن الادول انموج به قیاسن الى قیاسن اقوامن استحسان اینجوری اینجور گفتن قیاس اختزایی یک چیز میکنی قیاس بالاتر از اون قیاس و یک رجامن هل استحسان انده هم ایو خرد شد باشه بالعدول انموج به قیاس اینجور یعنی <تصفيق> ما ممکنه اینجور استحسان اینطوری رو کنیم مثلا قیاسی که میکنه اما یک عبارت از کتاب رو به قرنی اون عبارت مثلا یک زوریات لطیفی ای اینجور بگیم حالا مثال ها شنید در خودش امال کتاب مثلا کما قبل قائل مالی صدر از ما اگر مال من صدر در بزرگیم همون این قیاس لزوم و تصدق به کل مال مثلا فرش داره مثلا داره زشت داره هر چی که مالجه صداره فرض رو فرض درست قاعده و فهمینه اما چون در قرآن داره خود منه امواله صداره اموالم در روزمون 9 تا حیوان از دو تا قلاده صد 4 دو تا و تخصیص وقت سه سنه تخصیز رو که به مال زکا اگه مالی صدقتون دیگه میز و میکروفون و زکت و صوت و اینک دیگه صدقتی بیسته چون اونجور مال و زکا بیسته خب یه این رو مثلا یک خیلی استحسان نسید چیفی بزن بگیم چون دقایی که نه بازه که مالی همی. اگر کسی گفت مالی صدقتون از اینکه مالی صدقتون هم دیگه بگیم یا مثلا و اما سنه که از تحسانه هم لا غذا البسه این ایشو من میگوزه نا غذا ما چون من الان اینجور الان آقوی برمراسیه کنه از بحث صوم که داشتیم خصوص ابو حنیفی رو دارید که این که ناسیه قضا کنه که ماه همزان باید قضا بکنه ظاهرن این طور بود ایشو نوشه لا غذا الان من اکل ناسیه فیناها رو برزان خب میگه مختصه استدلال بر عذر در قرآن ثابته ولی نسیان اغلب شد وارد یک حکم و اثر بزرگه و باعث اما معذالتی بگیم قضا نذار ولی چرا چون در یه روایت دیگه داره که پیغمبر فرمود به همه ی واجب در باب ماه رمضان الله ها و سها خوب دقت و قضا اما پیغمبر الله و عطم این یک طعام اداری یک آبی تو خدا رو زدار الله و که بخش بلی این ببینید بهت سرینه خب الله و که بخش بخش ببینید یعنی این قضا قضا خود طعامی که دازه شد آبی که شد از طرف خود ابو یه از میفهمیم که قضا خب حالا که این خوراکی که من خودم الهی بود پس مناسب نیست که غذا روزه باش باشه این استهدانه طبقه بایده باید غذا ماه همزان میکرد اما شکن خدا باشه این غذا رو داره خدای تعالی تا برسوره روشان شد یعنی یه بحثی سی میگه برای حدیث مورد جای دیگریه، لیکن ما با مناسبات میفهمیم درمیانم ازش که غذا هم بر تو دید برکن بر کاری شد. این غذابی تو خدا بر تو فرستاده. میگه این محکومش اینه که غذابی نکنیم روزه غذابی نکنیم خدا فرستاده و عمل عاده فکر قدول انموجه به اجاراتی ترک تغییر ما المستعمل به همه و تقدیر سکنابی ها سکنابی بعید کام باشه سکنابی ها و مقدار اجره, اجره کمان زکرنابی زقدن بیموتقدن مثال آدم هم مثال حمام رفتن یکی میره حمام بیس دقیقی آب کم مستانی درنی زیادتر مستاند. هم مستاند همه مثلا به حمامی شد توان میگن بگیستم روحاده باسته اما عادت در این جالی شده و من هم من قال این یک که گفت انهو عبارتو ان تخصیص قیات به دلیل هو اقوام نه به قیات به دلیل دیگه بعد ایش شاید میکنه بیش. من نیم خواهیم بگی سر توضیح این و قادر کرخی علیه استحسان هوه فی این مسئلت ان مثل ما پهنگی فی نظاره ها الاخلافه این مقتضاق قادر در نظاره شو باید مکنی این طوره لکه اینجا دست برداشید لوجهن هوه اقوال ایشون استحسان رو این گرفته حالا برمیشون این بحثی که آیا این معنی استحسان شما چی میشه نمیشه بحثایی که ما هم یکی از اقوالی که در جزه شده که کسان غیر حاله ابحام میشه که محسن نداز اول عبال حسین بحثی که از بزرگان مختلف هوه ترک و وجهن من وجوه الاشتهار قیر شامل شمول الالفاد لوجه نوع و انوام وقفی حکم تاری علال اول تعبیر اون کرده بله راجع به کلامیشون یکی که سولانی صحبت کرده صحبت کرده بعد خودیشان آمده دیگه وقاض الحد و انکار اقرب کلام محروسه نوستیر لکونی جامعه است غیر ان حاصل افو یرجه الى تفسیر الاستحسان خلاصش به رجوع ان حکم دلیل خاص الى مقابلی به دلیل تار ان علیه اقوام من نفس او اجماع او غیری اگر این باشه یعنی از یک دلیل درست بردن دل به خاصه دلیل اقوامی ایشون میگه الان نانزای فی سهت احتجاج ببه و دلیل اقوامی هستون بخبول بکنید و این نوزه تلقیدی به استحسان این نمترا این استحسانه یا نه استحسان در عدلنسی چه اسمش استحسانه فحاصل و نزارا جنفی ایلن اطلاقات لحظیه حالا ببینید شما بعد از دو سرکت صحبت کرد یک خلاصه نزار اینست استحسان بگی یا نگی و لا حاصل لحظ ولی ایشون این معنا نداره و این اصلا جایی بخش نیست که شما از یک دلیل در وقتی روی به خاطر در یه میگه و این فی نظافی اطلاقه الاستحسان علال قدور ان حکم دلیل علال عاده انصاف بشن چون آدم کسی کلماته من حتی برموز کتابایی و رو در اصول نگاه کرد بیشتر نظرشون به همینه یعنی یک دریب، یک اختضاعی میکنه خوب دفر بکنی از اون برای عادت جایی شده این رو ما چه کارش به استرسان کرده در باقی اجیاره باز مقدار آب معیم باش، مقدار زمانی که اونجا تو باشه باشی چه میکنه؟ اما اون جاهی شدیه همان بکی بیس دقیقه که بیس فنید بری بیس دقیقه یک پول وارق کنه این روح محدد اینه خب این خیلی عجیبی اگه این عرفی باشه این جده موال پس هست جهاله حالا که تو جهاله جهاله بیشتر تحمل میکنه شبیه این نظار هم ما در فقر در موالی دیگه داریم یعنی به عبارت دیگر یک بحثید که بعضی از کارها اصلا عبارت دوست نیست مثلا وقتی که داریم یک هزار تومن داریم کسی هم محتاجیم میگه این هزار اثرت خودتو مال است، از طرق مال اگر مال او مال صدقه از طرق تو مال او اگر مال او صدقه از طرقه تو حساب میمشه یا همون مثالی که از من دیدیم اعتقه که نه همه میشونه فهممونه اعتقه عبده که انیه به مال که انیه مثال مربوطی مفاصل داره این داره است، استحساب بذاره خب قاعده از نظام باطل رو چرا چون داریم یه مال خود رو از طرقه من صدقه بذاره. اجیگو مال خودت شو میشه صدقه مال من مال رو باشه با اگر صدقه مال منم شو مالو بو باشه و هر کی میشه که مال خودت هر طرف لذا آقا اون زن گفته میگه اینکه هیچ چیز زن استهسان در چهنم اینجوریه میگه این اعطال عبد کنی حساب به مالی کنی این در حقیقت دو سه تا مطلب دیگه می مطلب اول تو مالت به من بلغش مطلب دوم تو از طرف من رکی بی. مال که حال مال منه صدقه بزیم این که میگه مال تو از طرف من صدقه بزیم ای نه این راه های استحسان که این های این دلیل یک خزان باطل باشه لكن قوار توی درست میدونه این راه آمدن فقها اینطور معمی کرد که خود احسل عبدکن نیکش خابیده اینا توی خابیده که اولا عبد خودت رو یا مال خود رو به من ببرد اینه اولا اون توی این ثانیه هم بعد از این که من داشتی، تو وکیلی که اون رو از سر من صدقه اون چه مشکل داری که اسمشی میکرد اسپیسان رو بگیردی شما در اون توی این طور شده کون رو بگیم اسمش دو آدم بگیم هم کسی که همه هم داره در بیار سختان بگیم یکی بیسی به قصیم یک سو داری که میگه کراه آم مستر بگیم آدم به نگاه میکنی به اصول برونو اینه دلیل و قائل یک اختزال میکنه و عرض خلافو عرض میکنه به خلاصه رجوع عن الذرين الالعاده جواب شیشون میتونه و همان یغال این ارد تو بل العاده متفق علیه الامر و اینج این نقطه پیش که شما اصلا این کی این درسته کی دکترسی میشه مرهم متشرق اگر سیره متشبهه مرال اهل حق و رحب با اجماع باشه اهل حق اصطفاق کردن و حقی باشه به اهل محصول مثل پیغمبرتان و حق و حاصلش این محلال درسته لیکن مردش اجماع و این قولی دیدی که مردم مردم عوام که توجه به دین و لوازم دین ندارن اینا این کاره میکنن حسن مرادشون اینه که از آدات مستحدث للعامر فیما بیده هم فضاله که به ما و ترک و دلیل شرعی به میگه حتی این مطلب هم به عنوان استحسانی یا برگشش به شما یا برگشش به یک وجه باسه خب مردون هم اکلاموی خود هم جنوره کار رو گردون هم به و هر حال ایشون که به یه راست حقیقل مطروفی ها در مسئله حالای که نظر ما رو عوشن شد اولا معروف شد که نظر ایش رجوع از چیزی که مختصای دلیل از اون رقیت بکن به یک عادت جاری بین مسلمان ها این استحسان این یکی دلیل بر این مفضل آیا قبولش بکنیم استحسان ایشون میگه نه اگر در حق اجماع رسید از باب اجماع رو ده اون حقا نرسید سیره بر مردم حجیز نه پس اونی که ایشون الان داره میفهمه خلاصه فهمش در استحسان اینه اون وقت ایشون باید میگه وقت تبست که و که به کتاب و سنه آیه, ایه, ایه, ایه کتاب که خونده اول وقت یه سبعون الگولت یه سبعون سنت و روایات رو هم خوندم اجماع رو هم به همین استحسان دخول الهمان بعد از جوابم داده گفته آیه که مراز چیز دیگری روایت هم مارا آهال مسلمون بعد به اجماع بله مسئله اجماع که در این هست ایشون یه این به خاطر استحسانی یا به خاطر اجماع یا صحب یا یک عادت باطلیره این خلاصه کلماتی بود که ایشان در واقع استحسان گفتن خب ما دیگه احتیاج خیلی به مناقشه علمی در مرحب استحسان با آن نداشت بود که کاش مرحب ملابا همزنین میگید می که خدا آن اصولی های احلی سنت در استحسان چی گفتن که بعدانا میگه آیا اصولی میشیه به استحسان تمسط میکنن. الان اولا دیدیم که خود تفسیر استحصان واضح نیست. واقعا چی هست واضح نیست. ماها به ذهنمون استحصان این اونه که ما حسن میدونیم. استحصان ما اینجور بیبرم بیگیم. مانا آقای موسیمون حسن هست. فابای امدالله این نیست. مرادشون از این اصطلاح این هست که بعد از آزاد بین مردم جاری میشه هست که طبق قاعده این درست نیست. در کتاب دیگه که من دیدم چون مثال نظر من برمو اگه مهند مراجعه شما شده بود یکی از مثال ها استثناء. اونجا مثال استثناء هم زده خود استثناء استفال از واقع سنته اونم یک مردگرده از این مثال استثناء مرادشون از استثناء چیه؟ مثال این دادن گفتن شما میریم به پیش مثلاً کبش دوست میریم برای من یک کفش دوست اینا میگه میگن شما اون رو به عنوان اجاره گرفتین یعنی اجیرش گرفتین که باز اون که در اصل اون تنها اجاره نیست اون charm و ها میگه و شما چه کار کردین اگر اجاره است خب واسه چرم charm که اینا زائد برای اجاره هست. اگر چرم محفوظ اینه که این charm برای اثر استعمال و لابلای کارسوشن فاسد میشه تلف میشه یعنی تلف نه فاسد این دیگه مالیات نداره حقیقت این کار چیه؟ پس طبق قاعده این کار باید باطل باشه لیکن اوه ولی داری شده یک مثال اکنون داده استثناء که فکر خب به نظر ما کسا اینا بحث علمی نیست اما اگه ارجاعش به اجماع باشه که اجماع پیش ما چیه به این معنا که پی و حجیت نداره و اگر همون زوقیات و استظهارهای غیر مناسب باشه که اون لچی برای حجیت نداره ما دیگه بگیم افطار صائم اگر نسیانان افطار کرد رزقون ساغه الله علیه ات امکان الله از ات امکان الله بفهمیم که این مثلا قضا نذری خصوصا خب فهمی نمی شه که از ات امکان الله رحمه در نمیاد ای که این قضا نذریه کجا داریم قضا نذریه ما مفصل در احاس و اصول تعال بحث متعرض شد ولی یک نحو تلازمی باشه بلزه افكار مثلا اگر ما فرعون میگه که من باب شما در آنیه طلا و نقره آب نخورید.عكسو از این مرداد در نمیاد که به ايش میگه تو که آب نخورید. اما اگر امرات گفت که سنم یا سلیب رو بشکن از بین شده. یعنی به باسه. اینا خب ما توضیح دادیم که اگر جايو هوكس راو اعدام شه این است که به ايش اگر حکم رو اعدامش نرد، روی یک نحوه تصرف رفت، این کار نکن. این کار نکن، معناش اینه که به اجباطه باشید این رو ما اشاره نکردیم، ما در چه در اهل سنتی در اهل شیعه، در ابواب مختلف یک نوع تلازماتی هست. مثلا آن گفتن که اگر امام فرمود شما به فقها با عنوان قاضی درگردی، خب معناش اینه که امام که فقیر و قاضی درازاد، اون شونه قضا هم برایش اینکه از کار قاضی تا خب این بدی برای حیطانه هم اینم فارسی بذار بکنی این استش استه می ایشون رو با تو تو استحاض نوشته میگن اگر یه چیزی شود لوازم و اورفیشم برش بار میشه نمیشه امام بگه تو قاضی هستی اما نقد و قیم درست نیست قاضیه اگر فرضاً تو قاضی هستی یعنی میشه نظر حیوان بگی همین بحث معروفه ما در ابواب مختلف داریم. اگر شورای اجازه داشت که زلزلهش باز بکنه خب میان به ملازم مردم اجازه صدور شهره نگاه بکن اگر شورای اجازه داشت مثلا حوالی مسا بعد از زلزله حتما بردارن قاعدتا بود مکانهایی که باز میشه میشه نگاه کرد اینطور گفته این ملازمات این بحث استهسان نیست این بحث تلازمات و تناقض درشه جای خودشه داره علی این شیوه ما فهم بحث استهسان اونجوری که ابتداا در ذهن ما خطور میکرد نی اصلا اصولا بین خود اونها ابهام کلی داره کاملا غیر واضحه و غیر و غیر صحیحه و اون حدیث مارا را الله من تعریف در سندش مطلبش رو کوتاش نکردم خب بین بی مرداری که نبود قبل و بعد کلام نگاه کرده بشه اون حدیث حتی از مضاف اینکه از طریق ماعمرز نشده این ربطی و اصلا ربطی این استثنا نداره استثنا بی معنا نداره پس انصاف قضیه تا اونجا که من تو ذهنم فوقاهایمون به وقت استحصان تمسک نکردن اصلا محرح نشده و حقم با شاتوئی انصافم من استحصانه فرد شرح این حق بادشانم این استحصان معدیه به این نوع